کتاب شست افسانه خاندانی ایرانی نویسنده مهری ماهوتی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد دوستانی گوینده فاطمه یعقوبی سلام به شنونده های کانال هزار رفسان. داستانی رو بهتون تقدیم میکنم به نام قد گاو. امیدوارم تا آخر این داستان همراه من باشید یکی بود یکی نبود روزی روزگاری روی زمین خدا دهی بود مردمش آروم و بیدرد سر سرشون به زندگی خودشون بود که یه روز حاکمی زورگو با اددهی سوار و پیاده به سراغشون اومد. مأمور جناب حاکم فریاد زد. خان خانان، حاکم جانان، امر فرموده اگه کسی بتونه با عقل و بوش خودش منو شکست بده، کاری به این آبادی و مردمش ندارم. وگرنه اختیار جان و مالتون با منه. بزرگا و ریش سفیدای ده جمع شدن و پیش خان رفتن. خان پرسید، اول بگید چه کسی منو اینجا فرستاده؟ بزرگای ده گفتن حتما خدا اینطور خواسته. خان دستور داد و همه اونا رو کشتند. خبر به گوش مردم رسید و ترسیدند. فکر کردن حالا چی کنیم؟ ما که زورمون به خان نمیرسه؟ جوان زیرکی که اهل همین ده بود گفت نترسید. یه بزرگ یه شطور به من بدید، چاره این مشکل دست منه. جوون باهوش بز و شطور رو دنبال خودش کشید و خدمت خان رسید. خان اونو که دید گفت: ای بچه، برای چی به اینجا اومدی؟ پسر جواب داد: برای نجات مردمم. خان پرسید: از تو ریش سفیدتر نبود؟ پسر بز نشون داد و گفت: از این ریش سفیدتر نداریم. اگه میخوای با اون حرف بزنید. خان پرسید: از تو بزرگتر پیدا نمیشه؟ پسر شطور رو نشون داد و گفت اون از همه بزرگتره بفرمایید با شطور صحبت کنید خان خندش گرفت و پرسید میدونید چه چیزی منو به اینجا کشونده پسر جواب داد هرس و تمه. فقط یه آدم تمکار خودشو صاحب جون و مال مردم میدونه خان به قیافه لاغر و زار پسر نگاه کرد از شجاعت و دانایی و صداقتش خوشش اومد گفت خودتون خودتو نجات دادی حالا چیزی از من بخوا اونو به تو میدم و ده و زیرو رو میکنم پسر گفت یه تیکه زمین به اندازه ی پوست یک گاو به من بدید خان قبول کرد و گفت امشب فرصت داری تا زمین دلخاطو انتخاب کنی فردا کار ده تمومه پسر برگشت به مردم گفت بزرگترین گاف نرو بکشن و پوستشو به شکل قطعه های باریک و دراز ببرند بعد پوستا رو به هم گره زد و مثل یه تناب بلند دور تا دور ده کشید اون شب گذشت و صبح شد صبح خان و افرادش اومدن پسر باهوش ده و داد و گفت این قطه زمین را میخوام که به اندازه یه پوست گابه خان که از دانایی پسر خیلی خوشش اومده بود گفت قبول دیگه با ده شما کاری ندارم تو هم اگه بخوای میتونی از افراد خودم باشی پسر کنار مردم ده رفت و خان به راه خودش سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها هایی از غول ها و کوتوله ها ماشره از جادوگران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 کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسان سوتی صوتی